حکایت حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است گفت آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست نماند حاتم تایی، ولی تا به عبد بماند نام بلندش به نیکوی مشهور زکات مال به در کن که فضلی رذ را چوباقبان بزند بیشتر دهد انگور، نوشته است بر گور بهرام گور که دست کرم بهز بازوی زو.